روزه یک سو شد و اید آمد و دلها برخواست میز خمخانه به جوش آمد و میباید خواست نوبه زهد فروشان گرانجان بگذشت وقت رندی و ترب کردن رندان پیداست چه ملامت بودان را که چنین باد خورد این چه عیبه است بدین بیخردی وین چه خطا؟ باد نوشی که در او روی ریایی نبود بهتر از زهد فروشی که در او روی ریاست ما نرندان ریاییم و حریفان نفاق آنکه او عالم سرست بدین حال گواست فرض ایزد بگذاریم و به کس بد نکنیم وان چه گویند روانیست نگوییم رواز چه شود گرمن و تو؟ چند قده باده خوریم باده از خون رزان است نه از خون شماست این چه عیبه است کزان عیب خلل خواهد بود ور بود نیز چه شد مردم بی عیب کجاست